مصنوی معنوی مولوی برنامه 162 توزی کردن پای مرد در جمله شهر تبریز و جمع شدن اندک چیز و رفتن آن غریب به تورت محتسب به زیارت و این قصه را بر سر گور او گفتن به طریق توجه الا آخر. باقی آن وام او مشهور شد، پای مرد از درد او رنجور شد. از پی توزی گرد شهر گشت، از تمع می گفت هر جا هیچ ناورد از ره به است، غیر صد دینار آن کودیا است، پای مرد آمد بدو، دستش گرفت، شد بگور آن کریم بس شگفت. گفت چون توفیق یابد بد که کند مهمانی فرخندهی، مال خود ایثار راه او کند، جاه خود ایثار جاه او کند، شکر او شکر خدا باشد یقین چون به احسان کرد توفیقش قرین ترک شکرش ترک شکر حق بود حق او لاشک به حق ملحق بود شکر میکن کن مر خدا را در نعم نیز میکن شکر و ذکر خاجه هم رحمت مادر اگرچه از خداست خدمت او هم فریضه است و سزاست زین سبب فرمود حق صلو علیه که محمد بود محتال علیه در قیامت بنده را گوید خدا، هین چه کردی آنچه دادم من تو را؟ گوید ای رب شکر تو کردم بجان، چون ز تو بود اصل آن روزی و نان. گویدش حق نه، نکردی شکر من، چون نکردی شکر آن اکرام فن، بر کریم کرده ظلم و ستم، نز دست او رسیدت نعمتم چون بگور آنولی نعمت رسید، گشت گریان زار و آمد در نشید. گفت ای پشت و پناه هرنبیل، مرتجا و غوس ابناه سبیل، ای غم ارزاق ما برخاطرت، ای چو رزق عام احسان و برت، ای فقیران را عشیر و والدین، در خراج و خرج و در ایفا دین، ای چو بحر از بحر نزدیکان، گوهر داده و تحفه و دوران متر، پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب رونق هر قصر و گنج هر خراب ای در ابرویت ندیده کس گره. ای چومی کایل راد و رسقده ای دلت پیوسته با دریای غیب ای بقاف مکرومات انقای غیب یاد ناورده که از مالم چه رفت. سقف سمت همتات هرگز نکفت ای منو و صد همچومن در ماه و سال مرتو را چون نسل تو گشته ایال نقد ما و جنس ما و رخت ما نام ما و فخر ما و بخت ما تو نمردی ناز و بخت ما بمرد. عیش ما و رزق مستوفا بمارد کل کلالف در رزم و کرم صد چوهاتم گاه ایسار نعم حاتم مرده با مرده میدهد گردگان های شمرده میدهد تو حیات میدهی در هر نفس کز نفیسی می نگنجد در نفس تو حیات میدهی بس پایدار نقد زر بیکساد و بی شمار، وارث نابوده یک خوی تو را ای فلک سجده کنان کوی تو را خلق را از گرگ غم لطفت شبان چون کلیم الله شبان مهربان گوسفند از کلیم الله گریخت، پای موسا آبله شد، نال ریخت در پای او تا به شب در جستجو و غایب شده از چشم او گوسفند از ماندگی شد سست و مند، پس کلیم الله گرد از وی فشاند کف همی مالید بر پشت و سرش، مینواخت از مهر همچون مادرش. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشم نی. گفت گیرم بر منت رحمه نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. مصطفی فرمود خود که هر نبی کرد چوپانیش برنا یا سبی. بی شبانی کردن و آن امتحان حق ندادش پیشوایی جهان. گفت سایل هم تو نیز ای پهلوان گفت من هم بودم دهر شبان تا شود پیدا و قار و صبرشان کردشان پیش از نبوت حق شبان هر امیر کوشبانی بشر آنچنان آرد که باشد معتمر حلم موساوار اندر رای خود، او بجای آرد به تدبیر و خرد. لاجرم حقش دهد چوپانیه، بر فراز چرخ مح روحانیه. آنچنان که را زین رعا برکشید و داد رعی اسفیا خاجه باره تو در این چوپانیت، کردی آنچه کور گردد شانیت. آنجا جا در مکافات ایزدد، سروری جاودانه بخشدد. بر امید کف چون دریای تو، بر وظیفه دادن و ایفای تو، وام کردم نو هزار از زر گزاف تو کجایی تا شود این درد صاف تو کجایی تا که خندان چون چمن گوی بستان آن و ده چندان زمن تو کجایی تا مرا خندان کنی لطف و احسان چون خداوندان کنی تو کجایی تابری در مغزنم تا کنی از وام و فاقه ایمنم من همه گویم بس و تو مفزلم گفته کین گیر از بحر دلم چون همه گنجد جهان زیرتین، چون به گنجد آسمان در زمین. الله تو برونی زین جهان هم با وقت زندگی هم این زمان. در هوای غیب مرغ می پرد، سایه او بر زمین می گسترد. جسم سایه سایه سایه دل است. جسم کی اندر خور پای دل است. مرد خفته روح او چون آفتاب در فلک تابان و تن در جام خواب. جان نهان اندر خلا همچون سجاف تن تقلب می کند زیر لحاف روح چون من امر ربی مختفی است هر مثالی که بگویم منتفی است ای عجب کو لال شکر تو وان جوابات خوش و اسرار تو ای عجب کو آن عقیق قند خا، آن کلید قفل مشکل های ما ای عجب کو آن دم چون زلفقار قار ان که کردی عقل ها را بیقرار چند همچون فاخته کاشان جو کو کوو کو کوو, کوو, کوو, کوو. کوو کو کو کو کو کو و کو کو کو کو است کو است کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو می در وقت اندوه و حزن کو همانجا که با وقت علت، چشم پرد بر امید صحت آن طرف که بحر دفع زشتیه باد جوی بحر کشت و کشتیه. آن طرف که دل اشارت می کند، چون زبان یاهو عبارت می کند او معلا هست بیکوکو همه کاش جولاها نه ما کو گفتمه عقل ما کو تا ببیند غرب و شرق روحها را می زند صدگونه برق جزر و مدش بود به بحر در زبد منتهی شد جزر و باقی ماند مد نو هزارم وام و من بی‌دست رس هست صد دینار از این توضیح و بس حق کشیدت ماندم در کشمکش می روم نومید ای خاک تو خش همتی میدار در پرحسرتت ای همایون روی و دست و همتت آمدم بر چشم و اصل ایون یافتم در وی به جای آب خون چرخ آن چرخ است، آن محتاب نیست جوی آن جوی است، آب آن آب نیست محسنان هستند، کو آن مستتاب اختران هستند، کو آن آفتاب تو شدی سوی خدا، ای محترم پس بسوی حق روم من نیز هم. مجمع و پای علم مأول قرون هست حق کلو لدینا محذرون نقش ها گر بی خبر گر با خبر کف نقاش باشد مهتزر. دم بدم در صفحه اندیششان، ثبت و محوه می کند آن بینشان. خشم می آرد، رضا را می برد، بخل می آرد، سخارا می برد. نیم لحظه، مدرکاتم، شام و غدو، هیچ خالی نیست زین اثبات و محوه. کوزگر با کوزه باشد کارساز کوزه از خود کی شود پهن و دراز چوب در دست دروگر معتکف ورنه چون گردد بریده و معتلف جامع اندر دست خیات بود ورنه از خود چون بدوزد یا درد مشک با سقا بود ای منتحی ورنه از خود چون شود پر یا تهی هر دم پر می شوی تی می شوی پس بدان که در کف سنع وی چشم بند از چشم روز کهی رود؟ سن از سانه چه سان شیده چشم داری تو با چشم خود نگر. منگر از چشم صفیه بیخبر. گوش داری تو به گوش خود شناو، گوش گولان را چرا باشی گرو؟ بیز تقلید نظر را پیش کن، هم برای عقل خود اندیش کن. دیدن خارزم شاه رحمت الله در سیران در موکب خود اسب بسنادر و تعلق دل شاه به حسن و چستی آن اسب و سرد کردن اماد الملک آن اسب را در دل شاه و گزیدن شاه گفت او را بردید خیش چنان که حکیم رحمت الله علیه در الهی نامه فرمود چون زبان حسد شود نخاس یوسف یابی از گز کرباس از دلالی برادران یوسف حسودانه در دل مشتریان آن چندان هاسن پوشیده شد و زشت نمودن گرفت که و کانو فیه من از زاهدینا. امیری را یکی اسب گزین در گله سلطان نبودش یک قرین او سواره گشت در موکب پگاه ناگهان دید اسب را خارزم شاه چشم شه را فر و رنگ او را بود تا بر رجعت چشم شه با اسب بود بر آن که افگندی نظر هر یکش خوشتر نمودی زندگر غیر چستی و گشی و روحنت حق بر او افگنده بود نادر صفت پس تجسس کرد عقل پادشاه که این چه باشد که زند بر عقل راه چشم من پر و سیر است و غنی از دوصد خورشید دارد روشنی ای رخ شاهان بر من بیزقی، نیم اسبم در رو باید به حقی جادویی کرده است جادو آفرین جذبه باشد آن خاصیات این فاتحه خوند و بسی لاحول کرد فاتحهش در سینه افزود درد زان که او را فاتحه خود می کشید فاتحه در جر و دفع آمد هید. گر نماید غیر هم تمویح اوست و رود غیر از نظر تنبیه اوست پس یقین گشتش که جذبه زانسری است کار حق هر لحظه نادر آوری است اسب سنگین گاو سنگین زبتلا می شود مسجود از مکر خدا پیش کافر نیست بترا ثانییه نیست بترا فر و نه روحانییه چیست آن جاذب نهانن در نهان، در جهان تا بیده از دیگر جهان. عقل محجوب است و جان هم زین کمین من نمی بینم، تو می تانی ببین، چون که خارمشه ز سیران بازگشت، با خواس ملک خود هم رازگشت، گشت. پس به سرهنگان بفرمودان زمان تا بیاورند. اسب را زان خاندان همچو آتش در رسیدندان گروه همچو پش میگشت امیر همچو کوه جانش از درد و غبین تا لب رسید جز عماد الملک زنهار ندید که اماد المالک بود پای علم بحر هر مظلوم و هر مقتول غم محترمتر خود نبود زو سروره پیش سلطان بود چون پیغمبره بیتماع بود و اصیل و پارسا رایز و شبخیز و حاتم در سخا بس همایون رعی و با تدبیر و راد آزموده رأی او در هر مراد هم به بزل جان سخی و هم به مال، طالب خورشید غیب او چون هلال. در امیری او غریب و محتبس، در صفات فقر و خلت ملتبس. بوده هر محتاج را همچون پدر، پیش سلطان شافع و دفع زرر، مربدان را ستر، چون حلم خدا خلق او برعکس خلقان و جدا. بارها می شد بسوی کوه فرد شاه با صد لابه او را منع کرد. هر دمر صد جرم را شافع شدی چشم سلطان را از او شرم آمدی. رفت او پیش اماد الملک راد سر بهرحنه کرد و بر خاک افتاد که حرم با هرچه دارم گو بگیر تا بگیرد حاصلم را هر مغیر این یکی اسب است جانم رحنه اوست گربرد مردم یقین ای خیر دوست گربرد این اسب را از دست من من یقین دانم نخواهم زیستن چون خدا پیوستگی داده است بر سرم مال ای مسیحا زود دست از زن و زر و اوقارم صبر هست این تکلف نیست نه نی تظویری است اندر این گرمی نداری باورم امتحان کن امتحان گفت و قدم آن اماد الملک گریان چشم مال پیش سلطان دردوید آشفته حال لب ببست و پیش سلطان ایستاد. رازگویان با خدا رب العباد. ایستاده راز سلطان میشنید و اندرون اندیشش این این میتنید. کی خدا گر آن جوان کج رفت راه که نشاید ساختن جست و پناه، تو از آن خود بکن از وی مگیر، گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر. زان که محتاجند این خلقان همه، از گدای گیر تا سلطان همه، با حضور آفتاب با کمال، رهنمایی جستن از شم و زبال، با حضور آفتاب خوشمساغ روشنایی جستن از شم و چراق بیگمون ترک ادب باشد زما کفر نعمت باشد و فعل هوا لیک اغلب هوشها در افتکار همچو خفاشند ظلمت دوست دار. در شبر خفاش کرمه می خورد کرم را خورشید جان می پرورد. در شبر خفاش از کرم است مست، کرم از خورشید جن بنده شده است. آفتابی که زیاد می زهد، دشمن خود را نواله می دهد. لیک شهبازی که او خفاش نیست، چشم بازش راست بین و روشن است. گربه شب جوید چخفاش او نمو در ادب خورشید مالد گوش او گویدش گیرم که آن خفاش لد علتی دارد تورا باری چهشد مالشت بدهم بزجر از اکتعاب تا نتانی سر دگر از آفتاب